لیرازل با باد می رود و روزها گذشت تابستان بر ارل گذشت خورشید که به شمال سفر کرده بود دوباره رو به جنوب حرکت کرد هنگام وداع گنجشک ها با زیر شیروانی ها نزدیک شده بود و لیرازل هیچ نیاموخته بود دیگر ستارگان را نیایش و یا به درگاه نگاره هاشان دعا نکرده بود اما هیچ سنت انسانی را هم نیاموخته بود و نمیتوانست درک کند که چرا نباید عشق و قدر شناسیش را به ستارگان ابراز کند؟ و الوریک نمیدانست زمانی فرا خواهد رسید که چون این موضوع کوچک و ساده ای آنان را به تلخی از یک دیگر جدا می کند؟ و سپس یک روز هنوز امیدوار او را به خانه نجات دهنده برد تا نیایش اشیای مقدسش را به او بیاموزد و نیک مرد با خوشنودی شم و زنگش و عقاب برنجی را که به هنگام خواندن کتاب او را با بالهای گشودش نگاه می داشت و جام نمادینی را که آب را تبرک می کرد و شمدان نقرهای را که شمهایش را نگاه می داشت آورد و به وضوح و به سادگی همان گونه که پیش از این هم گفته بود منشع معنا و راز تمامی این اشیا را برای او باز گفت و اینکه چرا جام از برنج و شمدان از نقره بود و نمادهایی که بر روی جام حکاکی شده بودند چه معنایی میدادند با فروتنی و حتی با مهربانی این اصرار را به او گفت و اما به هنگام گفتن هنوز چیزی در صدایش بود که از لیرازل دوری می و ولی رازل دریافت که او همچون کسی سخن می گوید که در امنیت در کنار ساحل ایستاده است و به سوی پری دریایی در میان دریاهای خطربار فریاد می زند. هنگامی که به قلع بازگشتند، گنجشکها برای آغاز سفرشان، در ردیف هایی بر روی شیروانی ها گرد آمده بودند ولی رازل قول داده بود که همچون مردم ساده ترسان از زنگ ارل اشیای مقدس نجات دهنده را نیایش کند و امید دیر رسی در ذهن آلوریک می درخشید که سرانجام همه چیز مرتب شده است ولی رازل روزهای بسیاری آنچرا که نجات دهنده به او گفته بود به یاد داشت و یک روز که دیرهنگام از کودکستان باز میگشت از کنار تمام پنجرههای برجش گذشت و در حالی که به شامگاه بیرون پنجره مینگری است به یاد آورد که دیگر نباید ستارگان را نیایش کند و اشیای مقدس نجات دهنده را به خود یادآوری کرد و کوشید تمام چیزها را که درباره آن اشیا به او گفته بودند به یاد آورد. نیایش کردن آنان چنان که می میبایست میکرد دشوار مینمود میدانست که تا چند ساعت دیگر گنجشک ها همه رفته اند و اغلب به هنگام رفتن آنها خلقشت گرگون می میشد و از این ترسید که شاید چگونه نیایش کردن اشیای مقدس نجات دهنده را فراموش کند و دیگر به یاد نیاورد بنابراین دوباره به بیرون به میان شب به روی سبزه ها به جایی رفت که جویبار باریکی جاری بود و از کف جویبار از مکانی آشنا چند سنگ بزرگ پهد برداشت و از تصاویر ستارگان روی گرداند سنگ ها که روزها در آب به زیبایی و با رنگ های سرخ و بنفش می درخشیدند اکنون همه تیره بودند. سنگ را روی چمنزار گذاشت، این سنگ صاف و پهن را دوست داشت چون به او را به یاد سخره سرزمین پریان می انداختند. همه را در یک ردیف چید، این برای شم، این برای زنگ، آن برای جام مقدس گفت، اگر بتونم این سنگ دوست داشتنی را درست نیایش کنم میتونم اشیای نجات را رو هم نیایش کنم. سپس در برابر آن سنگ های بزرگ پهن زانو زد و آنان را گوی اشیای مقدس باشند نیایش کرد. بالوری که در آن شب گسترده شگفت زده از اینکه کدام رؤیای وحشی لیرازل را بیرون برده است در جستجوی او بود. صدایش را در چمنزار شنید که دعاهای ویژه اشیای مقدس را میخواند هنگامی که آن چهار سنگ په را دید که لیرازل در چمنزار در برابرشان خم شده بود و نیایش می کرد گفت که سیاه ترین شیوه های کافران نیز از کار او بدتر نیست و لیرازل گفت دارم نیایش کردن اشیای مقدس نجات دهنده را تمرین می کنم الوریک گفت این رفتار کافران است مردم دره ارل بیشتر از هر چیزی از رفتار کافران وحشت داشتند که از آنان هیچ چیز نمیدانستند جز اینکه شیوه هایشان سیاه هست. و آلوریک با همان خشمی سخن می گفت که انسان ها به هنگام سخن گفتن از کافران داشتند و خشمش به قلب لیرازل سرایت کرد چون داشت برای خوشنود کردن او نیایش این اشیای مقدس را می و او این گونه سخن گفته بود و آلوریک سخنی برای از بین بردن خشم و دلجویی از لیرازل نگفت چون ابلهانه اندیشید که هیچ انسانی نباید در مسائل مربوط به کفر نرمی نشان دهد بنابراین لیرازل تنها و غمگین به برجش بازگشت و آلوریک ماند تا آن چهار سنگ بزرگ را به دور دستها پرتاب کند و گنجشک‌ها رفتند و روزهای ناشاد سپری شد یک روز آلوریک از او خواست اشیای مقدس نجات دهنده را نیایش کند و او کاملا فراموش کرده بود که چگونه و آلوریک دوباره از رفتار کافران سخن گفت روز می درخشید و سپیدارها، زرین و سنوبرها سرخ بودند. سپس لیرازل به برجش رفت و صندوقچه ی درخشان در نور پاییزی را گشود و افسون شاه پریان را در دست گرفت و همچنان که آن را در دست گرفته بود، از سرسرای مرتفع گذشت و به برج دیگری رفت و از پلکان کودکستان بالا رفت. تمام روز در آنجا با فرزندش بازی کرد، تومار را همچنان محکم در دست گرفته بود و هرچند اغلب با شادمانی بازی می‌کرد، آرامش غریبی در چشمهایش بود که زیروندرل با سرگشتگی به آن مینگریست. و هنگامی که خورشید پایین آمد، لیرازل فرزندش را در بستر گذاشت و با آرامش تمام برایش داستان‌های کودکانه گفت و زیرونرل آن جادوگر خردمند مینگری است و به خاطر خیرتمندی حد زد که چگونه خواهد شد و نمیدانست چه باید بکند تا این گونه نشود و پیش از غروب آفتاب لیرازل پسرک را بوسید و تومار شاه پریان را باز کرد رنجشی سبب شده بود آن را از صندوق بیرون بیاورد و ممکن بود این رنجش گذشته باشد و ممکن بود آن تومار را که در دستش بود باز نکند. کمی رنجش، کمی شگفتی، کمی هوسی بیهوده تر از آن که بتوان گفت. نگاهش را به واجه های شاه پریان در آن شکل های غریب سیاه زغالی جلب کرد. و هرچند جادوی در آن افسون بود که نمی توانم بگویم و جادوی وحشتناکی در آن بود افسون با عشقی نیرومند تر از جادو نوشته شده بود چرا که آن های رمزامیز با عشق شاه پریان به دخترش می درخشیدند و دو نیرو در آن افسون نیرومند در هم آمیخته بودند جادو و عشق بزرگترین نیروی آن سوی مرز شفق و بزرگترین نیرویی که در دشت که میشناسیم وجود دارد و اگر آلبیک میخواست او را نگاه دارد تنها میبایست به عشق خود اعتماد میکرد چون افسون شاه پریان نیرومندتر از اشیای مقدس نجات دهنده بود در همان دم کلی رازل افسون روی تومار را خواند رویاها آغاز به فروریختن از فراز مرز از سوی سرزمین پریان کردند رویاه آمدند که می توانست ای را در شهر وادار کند میزش را ترک کند و در ساحل دریا به رقص درآید و رویاهایی آمدند که می توانست تمامی آدمهای درون یک بانک را وادار کند درها و صندوق ها را گشوده رها کنند و سرگردان شوند تا به زمین آزاد و سبز و تپه پوشیده از سبزه برسند و رویاهای آمدند که می توانستند انسانی را ناگهان و در حالی که مشغول کار بود شاعر کنند رویاهایی توانمند بودند که شاه پریان به نیروی افسون جادوییش فراخوانده بود. ولی رازل با آن افسون در دست بیاور و در میان آشوب رویاهای آمده از سوی سرزمین پریان نشسته بود و در حالی که رویاها بیشتر و بیشتر از مرز فرو می ریختند و ترانه می و صدا می زدند و همه در یک ذهن بیچاره جمع می شدند بدنش سبکتر و سبکتر شد پاهایش نیمی بر روی زمین و نیمی در هوا شناور بود زمین نمی توانست او را بر روی خود نگاه دارد شاه دخت داشت به سرعت به بخشی از رویاها تبدیل می شد. دیگر نه عشق او به زمین و نه عشق کودکان زمین به او نیروی نگاه داشتن او را در آنجا نداشتند و اکنون خاطره‌های کودکی اش در کنار دریاچه‌های سرزمین پریان در حاشیه جنگل جرف در کنار آن سبززارهای خیالی یا در قصری که نمی‌توان از آن گفت مگر در افسانه‌ها فرار رسیدند با همان وضوحی این چیزها را میدید که ما صدفهای کوچک را به هنگام نگریستن از فراز یخ شفاف بسته شده بر روی دریاچهی خفته در آب میبینیم. در آن سوی صد یخی کمی تار است و خاطرهای نیز از آن سوی مرز سرزمین پریان کمی تار می نمودند. آواهای کوتاه شاد موجودات سرزمین پریان به گوشش رسیدند، عطرهای آن معجزه آسای درخشان در سبزهزارهایی که میشناخت به سویش شنا کردند صداهای ضعیفی از ترانههای جادویی از آن سوی مرز لغزیدند و به او رسیدند آهنگ‌ها و صداها و خاطره‌ها شناور در میان شفق به سویش آمدند همه سرزمین پریان فرایش میخواند سپس صدای شمرده و پرتنین پدرش را در نزدیکی خود شنید ناگهان برخاست و زمین کششی را که تنها بر چیزهای مادی دارد بر او از دست داد و همچون جزی از رؤیاها و تخیلها و افسانهها و پندارها از اتاق بیرون رفت و زیراندرل هیچ نیروی برای نگاه داشتن او با هیچ تلسمی نداشت و نیز هنگامی که لیرازل می رفت حتی توان برگشتن و نگریستن به کودک را نداشت و در آن دم بادی از جانب شمال غربی به میان جنگل ها وزید و شاخه های زرین را برهنه کرد و بر روی شیب ها رقصید و همراهی برگ های سرخ و زرین را رهبری کرد که پیش از آن از فرارسیدن این روز می ترسیدند و اما هنگامی که آمده بود با آن می رقصیدند. و باد و برگ ها با هم و در قوغایی از رقص و شکوه رنگ ها در نور خورشید که از اکنون از نظرگاه دشت ها رفته بود رفتند لیرازل با آنها رفت سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها